سردرگمم لافکار پوچم میخوام کاری کنم که جزوی از اسرار شب او کیست نمیدانم او چی میخواد نمیدانم سردرگمم به یه بحثم گمم بگو منو درکم کنن شاید اینجوری حرکت کنم کوهی سخنگو، زوزه های بادن ماهی کامل با یه نقصیگار جانم کام بده شب محوه نورمه بزا دودو با محبه نویسم بفهمم این دودمه زندگی مریض بر سر من با خاک آدمای های حریس بیمار ناپاک چوب پانی در و گوه نادان گوستفندانی که علف میخورن بانان آنان که بد کردن خواهان جنگن همینا که دینو سپر کردن مایه ننگن خائنن درنگن فرهنگ کشتنش چالش کردن کو روش واسه از یاد بردنش خواهش کردن تمدن ایرانی کو که ندیدیم رزاشاه کو شاه قدیمی ارشالیم تنها دلیل سبت خدا مواد تجارتی کسیف از سمت شما ایران یه فیلم با موضوع درام نان آرد و تنور، اما گران سی، صد و سیزده، واسه بودن توشتن نیسمت هرچی می جنبن اینا تیستن، از آهین گروه میشه ولی نزدیک روز پایان این بازی نزدیک روز خراب کردن و باستازی میای روحانی، با منطق، با مخص نصیتمون میکنی، نبازو با نصب سعی میکنی که به ما بگی هست قرور، فردی پست خدا هست، ظهور نزدیک است. ممممممممممممم <متصف> من ملک استم. تو ملک چیست مناسب است زوجم. چیست مناسبم حتما باید خوشگل باشه، خوشیک باشه، قدش دومنت باشه، قادش دومنت باشه خوب باشه. سمت باشه خوب باشه. قهرمان باسکتبال یا بالیبال باشه. پوچش سپنترش باشه. پوچش کرلو باشه. باش کارکن دار باشه. سام باشه. ساکن خیابون فرشته باشه. بچه مال او باشه. مان ملک هم بسیج باشه. دوستون دارم باشه وتونم ماان ملک برگش. نوه های سب. تنها. تان saya tidak, kerja apa? Tan hoi, tan hong. Abah terdah ini bidadar. Dah ini mohon. Dah ini bidadar. Tan hoi, tan hong. Kuda murni. Baiklah, kerajaan setan hoi yang luar sangat indah. Tan hoi yang kuat.